معنی شهادت اینه اما او فرزند خانواده ای است که هنر خوب مردن را در مکتب حیات خوب آموخته است. در این جهان هیچ کس نیست که همچون او بداند چگونه باید مرد دانشی که دشمن نیرومند او که بر جهان مسلط است از آن محروم است. و این است که قهرمان تنها به پیروزی خیش بر انبوه سپاه خسمه این چنین مطمئن و این چنین مسمم و بیپردید به استقبال آمده آموزگار بزرگ شهادت آموزگار بزرگ شهادت اکنون برخواسته تا به همه اونها آموزگار بزرگ شهادت اکنون برخواسته تا به همه اونها که جهاد را تنها در توانستن میفهمند. و خیال میکنن که وقتی که نمیتوانی دیگر نباید جهاد کنی. آموزگار بزرگ شهادت اکنون تنها برخواست است تا به همه اونها که جهاد را تنها در توانستن میفهمند و به همه اونها که پیروزی برخصم را تنها در قلبه بیاموزد. بیاموزد که شهادت نه یک باختن بلکه یک انتخابه. انتخابی که در آن مجاهد با قربانی کردن خویش در آستانه معبد عشق و آزادی بر پیروز می شود. و حسین وارث آدم آدم که به بنی آدم زیستن داد و وارث پیامبران بزرگ که به انسان چگونه باید زیست را آموختند حسین اکنون آمده است تا در این روزگار به فرزندان آدم چگونه باید مرد را بیاموزد حسین آموخ که مرگ سیاه حسین آموخ که مرگ سیاه سرنوشت شوم مردم است که کن به هر ذلتی میدهند تا زنده بمانند. چه؟ کسانی که گفتاخی آن را ندارند که شهادت را انتخاب کنند مرگ آنم را انتخاب خواهد کرد. کلمه شهید بزرگترین بزرگترین بار معنی را برای اونچه که الان میخواهیم و میخواستم بگم در بردار. شهید میبینیم در لغت به معنای حاضر کسی که حاضره به معنای گواه و گواهی دهنده و خبر راستین و امین و همچنین به معنی آگاه شهادت در فرهنگ ما در مذهب ما یک حادثه خونین ناگوار نیست در مذاهب و تاریخ های اقوام شهادت عبارت است از قربانی شدن قهرمانانی که در جنگ ها به دست دشمن کشته شدن و <تصفيق> این یک حادثه غمانگیز مصیبت باری و نام اون مرد شهید اما در فرهنگ ما شهادت مرگی نیست که دشمن بر مجاهد تحمیل کند شهادت مرگ است که مجاهد با همه آگاهی و همه منطق و شعور و بیداری و بینایی خیش خود انتخاب میکنه حسین نگاه کنین میاد فقط برای اینکه که بمیره زیرا جزین فلاحی برای رسوا کردن دشمن و برای دریدن این پرده های فریبی که بر این قیافه های کریه و برای این که اگر دشمندان نمی تواند بشکند لاغل به این وسیله رسوا کنه و برای این که در اندام مرده و فسرده این نسل دوم خون تازه جهاد و حیات بدند جز مردن و جز انتخاب مرگ سرخ خیش فلاحی و چارهای نداره و میبینین که چقدر آگاهانه با همه مقدمات و با دقت با استدلال و با منزل به منزل تر کردن و تفصیل کردن سرنوشتی که به سوش حرکت میکنه و با یک کچین کردن اصحابش مردانی که برای مرگ با اویند و همچنین با یکایی که است با همه هستی که بر روی این زمین دارد یعنی خاندانش آمده است تا در مهراب شهادت قربانی سود. زیرا زیرا سرنوشت اون ایمانی که نابود داره میشه و سرنوشت این مردمی که به امید عدالت و آزادی اسلام آمده اند و اکنون اسیر ستم و ظلمی بدتر از جاهلیت شدهاند همه در انتظار این است که ببینند این قهرمان تنها چه میکنند و او که هیچ صلاحی و قدرتی نداره همه وجودش را که خود و خانوادش باشند آمده تا به شهادت شهادت بده که مسئولیت خیش را انجام دادم و بیش از این نمیتوانستم و اینی که در روز آشورا شنیدین که اون خون فرزندش رو به, به دست میگیره و رو به های خدا پرتاب میکنه که ببین ببین این قربانی را از من بپذیر. شاهد باش و در چنین روزگاری که مردن برای مرد تضمین حیات یک ملت هست. و این است که ان الله شاء ان یراک قتیلا به این معنا اینجاست که خداوند خاص تا در چنین هنگامی ترا شهید و کشته ببیند شهادت در فلسفه خلقت آدمی آدمی که ساخته شیطان الله انسانی که ترکیب لجن و روح خداست ترکیبی از پسترین پست و عالی ترین علوه ترین ترکیبی مذهب و احکام مذهبی عبادات احکام مبارزات خدمات هرچه هست علم همه اینها کوشش ها و تمرین که یک انسان می کند تا بودن پست خیش را به نفع بودن بالایش نیمه لجنی و شیطانی خیش را به سود نیمه خدایی و روحانی خودش تضعیف کند اما شهادت عبارت است از عملی که یک مرد ناگهان به شکل انقلابی بودن پفت خیش را در آتش یک عشق و یک ایمان می و یک پارچه خدایی و یک پارچه نور و حورایی می و این است که شهید قوصل نداره و شهید کفن نداره و شهید حساب و کتاب قیامت نداره زیرا اون انسانی که گناه می کرد و خطا می کرد و انسان پیش از شهادت را خود شهید پیش از مرد قربانی کرده و حضور یافت حضور یادته حضور برای اینه که عثو عاشوراست امام حسین با اون دقت نظافت میکنه با اون دقت آرایش میکنه استهمام میکنه بهترین لباسهاش هاش رو میپوشه و بهترین عطرهاش رو میزنه در اوج خون و در اوج مرگ و در اوج نابودی همه کس و در آستانه رفتن خودش و میگن که هر ساعت میزشت و شهدا بر همه باشته میشدن چهره او گلگونتر و برفروختر و قلبش از شو بیشتر به تپش میامد که میدانه میدانه فاصله حضور اندک مشکل صحبت شده است. شهادت. شهادت در یک کلمه برخلاف تاریخ‌های دیگه که حادثه است درگیری است مرگ تحمیل شده بر قهرمان تراژدی است در فرهنگ ما یک درجه است. وسیله نیست خود هدف است اصالت است. خود یک تکامل یک علو خود یک مسئولیت بزرگه خود یک راهه نیم بر به طرف سعود به قله معراج بشریت و یک فرهنگ یک و در همه قرنها و عصرها هنگامی که پیروان یک ایمانی و یک اعتقادی قدرت دارن با جهاد عزت خیش را و حیاتشون را تضمین می کنند و وقتی که به زفت دوشار شدن و همه امکانات مبارزه ازشون گرفته شد به شهادت و با شهادت حیات و حرکت و زندگی ایمان و عزت و آینده و تاریخ خودشون را تضمین می کنند که شهادت که شهادت دعوتی شهادت دعوتی به همه اصلها و به همه نصلها که اگر می توانی اگر میتوانی بمیران و اگر نمیتوانی بمیر من عادت ندارم که دعا بکنم برای اینکه مقام خودم به خیلی کنچکتر میدونم از اینکه این کار بکنم. اما اجازه میدم اجازه میخوام از شما که در چنین حالتی که هستیم به اون معنایی که دعا وجود داره چند تا دعا بکنیم. امروز به هر حالتی که در بیایی کشکار نداره توی روایات ما هست عین همین هم کارل میگه که دعا باید همچون گفتن بچهای باشد با پدرش و هرچه گستاخانهتر همچون یک طلبکار مسرانه دعا بشود به اجابت نیازمند نزدیکتر ای خداود تو که بنی آدم را کرامت بخشیدی، دوستان در فصل بدی هستیم و من تمام امیدم و همه ایمانم به شما جوانهاست برای اینکه اونهایی که به هر حال به جای رسیدن علم دارند پول دارند، خست دارن چیزی دارند، مسئولیتشون بیشتر از حفظ همون چی که دارند نیست اما شماها که هنوز نعمت محرومیت و دارید شاید بتوانید برای نجات ایمانی که از دست می و اون چی که فراموش می شود کاری بکنید ای خداوند تو که به بنی آدم کرامت بخشیدی تو که امانت خاص خیش را بردوش بنی آدم نهادی، ای تو که همه پیام برانت را برای تعلیم کتاب و تحقق ادالت مبعوث کرده ای تو که عزت را از آن خود میخوانی و از آن پیامبران خود و از آن انسانهایی که ایمان دارند ما انسانیم به تو و پیام پیامبران تو ایمان داریم آزادی و آگاهی و عدالت و عزت را از تو میخواهی که سخت محتاجی و دردناکانه تر از همه وقت قربانی اثارت و جهل و ذلتی ای خداوند مستضعفان تو که اراده کرده ای تا بر بیچاره شلگان زمین منت نهی و توده‌های محکوم زعف و محروم از حیات را که در بند کشیدگان تاریخ و قربانیان ستم و قارت زمان و مبقوزان دوزخ زمینند به رهبری انسانشون برکشی و به براست جهانشون برداری اینک هنگام در رسیده و مستضعفان زمین وعده تو را انتظار میکشند. ای مظهر غیرت مستضعفان زمین در این زمان تنها پرستندگان تو ام ای خداوند تو که همه فرشتگانت را در پای آدم به سجده اینک نمی که بنی آدم را در پای دیوان به خاک سجود افکندند؟ آنان را از بند عبودیت بتهای این قرن که خود تراشیدیم به بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی ببخش ای خداوند انها که به آیات تو کفر می ورزند و پیامبران تو را به ناحق میکشند و نیز مردانی را که از مردم برخواسته و به عدالت و برابری میخوانند نابود میکنند بر جهان مسلطند به عوام ما علم آگاهی به مؤمنان ما روشنایی به روشن فکران ما ایمان و به, مستب... به متعصبین ما فهم و به فهمیدگان ما که از صبح و به زنان ما شعور و به مردان ما شرف و به پیران ما آگاهی و به جوانان ما اصالت و به اساتید ما عقیده و به دانشجویان ما نیز عقیده و به خفتگان ما بیداری و به بیداران ما امید و به مبلغان ما حقیقت و به دینداران ما دین و به نویسندگان ما تعهد و به هنرمندان ما درد و به شاعران ما شعور و به محققان ما هدف و به نومیدان ما امید و به ضعیفان ما نیرو و به کاران ما گستاخی و به نشستگان ما قیام و به راکدان ما تکان و به مردگان ما حیات و به ما نگاه و به خاموشان ما فریاد و به مسلمانان ما قرآن و به سیعیان ما علی و به فرقه ما وحدت و به حسودان ما شفا و به خودبینان ما انصاف و به فهاشان ما ادب و به مجاهدان ما صبر و به مردم ما خداگاهی و به همه ملت ما همت و تصمیم و استعداد فداکاری و شایستگی نجات و عزت بدف ای خدای کعبه این مردمی را که همه عمر هر صبح و شام در جهان رو به خانه تو دارند رو به خانه تو می زیند رو به خانه تو می میرند. این مردمی را که بر گرد خانه ابراهیم تو تراف می کنند قربانی جهل شرک و در بند جور نمرود مسه و توی محمد پیامبر بر بیداری و آزادی و قدرت. در خانه تو در خانه تو حریقی دامن گستر در گرفته و بر سرزمین تو سیلی بنیان کن از غرب پخت تناورد است. و خانواده تو دیریست که در بستر سیاه ذلت به خواب رفتند بر سرشان فریاد زد بر سرشان فریاد زن قم انظر بیدارشان کن و تو ای علی ای شیر مرد خدا و مردم رب نوع آتش و شمشیر ما شایستگی شناخت تو را از دست دادیم شناخت تو را از مغزهای ما برده اما عشق تو علا رقم روزگار در عمق وجدان خیش در پس پرده دل خیش همچنان مشتعل نگاه داشته ایم تو آشقان خیش را در خاری رها می‌کنی، تو ستمی تو ستمی را بر یک زن یهودی که در ذمه حکومتت میزیست تاب نیاوردی و اکنون مسلمانان را در ذمه یهود ببین و ببین که بر آنان چه میگذرد ای صاحب اون بازو ای صاحب اون بازو که یک ضربش از عبادت دو جهان برتره، ضربه دیگر و شما دوتن و شما دوتن ای خواهر ای برادر و شما دوتن ای خواهر ای برادر ای شما که به انسان بودن معنی دارید و به آزادی جان و به ایمان و امید ایمان و امید و با مرگ شکوه خیش به حیات زندگی برسیدید آری، ای دوتن از آن روز دردناک که خیال نیز از تصورش می و دل از دردش پاره می شود چشمهای این ملت از عشق خوش نشده توده ما قرنهاست که در غم شما و در عشق به شما میگرید مگر نه عشق تنها با اشک سخن میگوید یک ملت در طول یک تاریخ در اندوه شما زجه کشد به جرمین عشق تازیانه ها خورده و قتل ها دیده و شکنجه ها کشیده و هرگز برای یک لحظه نام شما دوتن از لبش و یاد شما از خاطرش و آتش بی تا به عشق شما از قلبش نرفته هر کازیانه ای که از دژخی می است داق مهر شما را بر پشت پشت و پهلویش نقش کرده ای زینب ای زینب ای زبان علی در کام با ملت خیش حرف بزن. ای زن ای که مردانگی در رکاب تو جوانمردی آموخت زنان ملت ما اینان که نام تو آتش عشق و درد بر جانشون می میافکند به تو محتاجند بیش از همه وقت جهل از یک سو به اثارت و ذلتشن کشنده است و قرب از سوی دیگر به اثارت پنهان و ذلت تازهشون میکشاند و از خویش و از تو می میسازد آنان را از استهمار کهنه و نو از بندگی سنت های پوسیده و دعوت های عفن از ملعبه تأثر قدیم و تفنن جدید به نیروی فریادهایی که بر سر یک شهر شهر قصاوت و وحشت می کوبیدی و پایهای های قصر قصر جنایت و قدرت را می لرزندی تا برخیش براشوبند و تا رو این پرده های فریب را بردارند و تا در برابر این طوفان برباد دهندهی که به وزیدن آغاز کرده است این ستادن را بیاموزند و این ماشین و را که از او یک بازیچه جدید میسازد، باز برای استهمار جدید برای اقفال جدید برای پر کردن ایام فراغت و برای بلعیدن حریسانه نچه سرمایداری به بازار میآورد و برای لذت بخشیدن به هوسهای کسیف برجوازی و برای شور آفریدن به تالارها و خلوتهای بیشور و بیروح اشرافیت جدید و برای سرگرمی زندگی پوچ و بیهدف و سرد جامعه رفاه در هم و خود را از حرمهای اسارت قدیم و بازارهای بیحرمت جدید به امامت تو نجات بخشند ای زبان علی در کام ای رسالت حسین بردوش دوش ای که از کربلا می و پیام شهیدان را در میان حیاهوی همیشگی قدار بندان و جلادان همچنان به گوش تاریخ میرسانی زینب با ما سخن بگوی مگو که بر شما چه گذشت مگو که در آن صحرای سرخ چه دیدی مگو که جنایت اونجا تا به کجا رسید مگو که خداوند اونجا عزیزترین و پشکوه ترین ارزشها و عظمتهایی را که آفریده است یک جا در ساحل فرات و بر روی ریگزارهای تفتیده ی بیابان تف چگونه به نمایش آورد و بر فرشتگانش عرضه کرد و بر انسان تا بدانند که چرا میبایست بر آدم سجده کنند آری زینب مگو مگو که در آنجا بر شما چه رفت مگو که دشمنانتان چه کردند و دوستانتان چه کردند آری ای پیامبر انقلاب حسین ما میدانیم ما همه را ایم از تو تو پیام کربلا را پیام شهیدان را به درستی گزارده‌ای تو شهیدی هستی که از خون خیش کلمه میسازی همچون برادرت که با قصد خون خیش سخن میگوید آری ای پیام بر انقلاب حسین ما میدانیم ما همه را شنیده تو پیام کربلا را پیام شهیدان را به درستی گذارده اما بگو بگو ای خواهر بگو که ما چه کنیم لحظه بنگر که ما چی میکشیم دمی به ما گوش کن تا مسائب خیش را با تو بازگوییم با تو ای خواهر مهربان این تو هستی که باید بر ما بگری نه ما بر تو با تو ای خواهر مهربان ای رسول امین برادر ای از کربلا می و در طول تاریخ بر همه نظرها میگذری و پیام شهیدان را می اتانی. ای که از باغهای سرخ شهادت می آیی. ای زینب ای که از باغهای سرخ شهادت می آیی. ای که بوی گلهای نوشکفتهٔ نوش ان دیار را به دامن داریم ای دختر علی ای زن ای خواهر ای که قافل سالار کاروان اسیرانی ما را نیز در پی این قافل با خود ببر و اما تو ای خسته با تو چه بگویم شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل و تو ای چراغ را ای کشتی رهایی ای خونی که از آن نقطه صحرا جاودان می تپی و می جوشی و بر بستر زمان جاری هستی و بر همه نسل ها میگذری و هر سرزمین حاصل خیزی را سیراب به خون می کنی و هر بزر شایستی را در زیر خاک میشکافی و میشکوفانی و هر نهال تشنی را به برگ و بار حیات و خرمی می نشانی ای آموزگار بزرگ شهادت برقی از اون نورا بر این شبستان سیاه و نومید ما بیست کن ای از اون خون را در بر بستر خشکیده و نیم مرده ما جاری ساز و تفی از اون آتش و تفی از آتش اون صحرای آتش خیز را به این زمستان سرد و فسرده ما ببر ای که مرگ سرخ را برگزیدی تا عاشقانت را از مرگ سیاه برهانی تا با هر قطره خونت ملتی را حیات باخت بخشی و تاریخی را به تپش و کال بد مرده و فسرده اسری را گرم کنی و به جوشش و خروش زندگی و عشق و امید دهی ایمان ما ملت ما تاریخ فردای ما کال بود زمان ما به تو و خون تو محتاجم و سلام اللهم اعجل في فرج مولانا صاحب الزمان صلى الله عليك يا أبو عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراب سيدة سوء العالمين السلام عليكم وعلو جدك وابيك وعلو أمك سجم الإمام القائم المهدي المنتظر صلوات الله فسلامه علي مجمعين ورحمة الله وبركاته